ارزون و بیمعتلی باشین مشتیم دلی نه داره نه سندلی ماشین کارتون مارتولا که انداخته صندوق چی ها هستن اینو البته فضولی نماشه ما از اوناش نیست زونه قبلیغوت او برای انتخاباتا اینا باره ما میبینیم کل شهر رو چی؟ دوباره برقشنه این اکس و ایمس یعنی شما چیزی خودت کندید ماندی دیدی؟ نه؟ چی پس؟ آن مدیرش سابخونهی سفارش مفارشان رو باستواری تحویل دید ایوه ما این انتخابات و انتخابات چی؟ به زرر هرکی باشه چی به سود شما هستا نه؟ کارکاساوی سکه بود ایوه ایوه باش میگم شما تو کار تبلیغ مبلیغی به این کاندیده بگو با این فیگورهای مسخره چی میگیرن واسه این اکساشون آخه یارو چی تو محل ما تبلیغ کرده بود صحبی داشتم میومدم چی فیگور گرفته بود نشون داده بود اینهون آرنولد یکی نیسته شما میخوای بریم مجلس میخوای بریم مجلس میخوای پشبازونشون رو ملت بدی زام زمانی بدنسازی که نمیخوایی میخندی باید بهش بگی میخنده یا سر خط بطه تو گوشیشون یه اکس خانومه کاندیدوه رو داشتن ببین به مولا به مولا داشتی داشت با تادوره غیر میداد یعنی چی آخه اینوان باز میخنده بابا مجلس میخوان برن دیگه رقص خونه نیست چه؟ تو خارج مارزش هم اینجوری نیست دیگه بلا زونم؟ بالا البته واسه رای رفتنه دیگه اینا میان بله رایتی هر کاری میکنم بعد که رایی گرفتنتی چی آزی مکه <تصفيق> داش میگم شما که خونه داری چرا یه وانت, وانت ردیف نمیکنی خب سخت این زوری که... آ داری خراب شده زونه من می میخوایین کارتون مارتونها رو رتوندیم خودم بیام کابوتو بزنم مالا چیست سوته راش مندازم فنی منی ردیف و راننده بیامون گو باینامه یکه <تصفيق> زونه من تا رفلک و پولشه میگیریم ازت دیگه شما هم که چی الان مایه پایی ردیفه زونه ایو دوشه زونت بابا کار میکنی زحمت میکشیم ده تدیگه رو کرتم اونایی که مفت بخورن میترخنم اینشالله چی از سششون بزنه بیرون چه ترافیکی هم اصلا از اصلا بابا بندازیم از این کوت پس کوتها بریم که دیر شد بابا خیلی عاشق شدم بی کبر یه دل د یه دون دیگه کد کوردن ترنک اپلیه قلب مهربون درید و بوی سر باتی کدون در این یکی مهربان باش فارس اون یکی یه وار کلک سوارشه دلم می‌خواد جواب کنم بگو خودت مو جواب کن اپلیه دومین خمجا بول باشه خوش قلب و مهره باشه تو کارش باشه درسش خوب ربول رب باشه و که دیگه خستش شدم نمیدونم چی کار کنم نمیدونم که این میون چه بوله سوار کنم